قررمان روز که این منزل ویران بروم راحت جان طلبم و از پی جانان بروم گرچه دانم که به جایی نبرد را قریب من به بوی سر آن زلف پریشان بروم دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم چون سبا باطن بیمار و دل بیتاقت به هواداری آن سر خرامان بروم در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت با دل زخم کش و دیده گریان بروم نظر کردم گر از این غم بدر آویم روزی تا در میکد شادان و خان بروم به هواداری او ذر صفط رقص تا لب چشمه خورشید درخشان بروم تازیان را غم احوال گران باران نیست پار سایان مددی تا خوش و آسان بروم ور چه حافظ بیابان نبرم ره بیرون همره ره کوکبه آسف دوران بروم